فصل پانزده اشعار متفرقه مسنوی حضرت ام البنین سلام الله علیه و حضرت عباس علیه السلام بود بر لب من نوای چنین سلام و درودم به ام البنین همان که بود نام او فاطمه اول فضل او ساقیه القمه همون که عدو کرده فرقش دوتا دل بر غمش مبتلا زکینه دو دستش جدا شد زتن دیگر تیر خود را به مشکش نزن سه شعبه به چشمان سقا رسید امید اول شد نامید صدا زد برادر بیادر برم ولی جسم من را نبردر حرم صدا زد حسین برادر نرو نگه کن شکستم من از داغ تو تو رفتی یا من بی تو ماندم اخا به اشکم. ادو میزند خنده ها. به اشکم ادو میزند خنده ها.